اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ون نازعات غرقا به نام خداوند بخشنده بخشایشگر سوگند به فرشتگانی که جان مجرمان را به شدت از بدنهایشان برمیکشند کشند و فرشتگانی که روح مؤمنان را با مدارا و نشات جدا می سازند و سوگند به فرشتگانی که در اجرای فرمان الهی با سرعت حرکت می کنند و سپس بر یکدیگر دیگر میگیرند می و آنها که امور را تدبیر می کنند آن روز که زلزله های وقت همه چیز را به لرزه در می آورد و بدون آن حادثه دومین سیحه عظیم محشر رخ میدهد قلوب یوم ایذ واجفه ای در آن روز سخت مزترب است ابصارها قاشعه و چشمهای آنان از شدت ترس فرو افتاده است یقولون ا این لمردودون فی الحافره ولی امروز می‌گویند آیا ما به زندگی مجدد باز می گردیم؟ آیا هنگامی که استخانهای ای شدیم ممکن است زنده شویم؟ می اگر قیامتی در کار باشد بازگشتی زیان بار ولی بدانید این بازگشت تنها با یک سیغه عظیم است فاذاهم فا بالساهره ناگهان همگی بر ارزه زمین ظاهر می‌گردند هل حديث آیا داستان موسی به تو رسیده است اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوی در آن هنگام كه پروردگارش او را در سرزمین مقدس توا ندا و گفت اذهب الی فرعون انه طغا به سوی فرعون برو كه تقیان کرده است فقولحلکه اینا تذ کرد و به او بگو آیا می خواهی پاکیز شوی؟ و دی که اینا را و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترخسی و گناه نکنی؟ فیتبر سپس موسا بزرگ ترین مجزه را به نشان داد فکذب و عصا اما او تکذیب و اسیان کرد ثم ادبر يسعى. سپس پشت کرد و پیوسته برای محو آین حق تلاش نمود فحشر فنادا. و صاحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود فقال أنا ربكم الأعلی و گفت من پروردگار برتر شما هستم فأخذه الله نك علی الآخرة والأولى از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت ان ذلك در این عبرتی است برای کسی که از خدا بترسد انتم اشد خلقا ام السماء آیا آفرینش شما مشکل‌تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنانهاد؟ رفعا سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت و اضى ليلها و اخرج و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود والارض بعد ذلك و زمین را بعد از آن گسترش داد اخرج منها ماءها و مرعاها و از آن آب و چراگاهش را بیرون آورد و الجبال ارساها و کوها را ثابت و محکم نموده متاعا لکم ولی انعامکم همه اینها برای بهرهگیری شما و چهار است فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى انْغَامِي كِ آن حادثه بزرگ رخ دهد یوم یتذکر الانسان ما سعى در آن روز انسان به یاد کوشش هایش می افتد و برزت الجحيم لمن یرا و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می‌گردد فاما من اما آن کسی که طغیان کرده و الحیات الدنیا و زندگی دنیا را مقدم داشته فئن الجحیم هی المآوا مسلما دوزخ جایگاه اوست و اما من خاف مقام ربه و نهن نفس عن الهوا. و آنکس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوا باز دارد. فَإِنَّ این هِيَ الْمَحْوَةَ. از قطعا بهشت جایگاه اوست. الون کمی ساعتتی ایینسه و از تو درباره قیامت میپرسند که در چه زمانی واقع می شود فیما انتیم من کراه تو را با یادآوری این سخن چهکار؟ این ربک منتهاها. نهایت آن به سوی پروردگار تو است؟ انما تو منذر کارتو من فقط بیم دادن کسانی است که از آن میترسند گاننهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها آنها در آن روز که قیام قیامت را میبینند چنین احساس می‌کنند که گویی توقفشان جز شامگاهی یا صبح آن بیشتر نبودند